گامو و دختر وزیر کت خدایی دهکدهی توی لاکاپور در مناطق شمالی سند توی خونه بزرگ زندگی میکرد که دیوارهاش گلی بود و فقط یه در ورودی داشت. این کت خدا هر چیزی رو که دلش میخواست داشت. جز یه چیز و اون هم داشتن یه بچه بود. اونا همسرش شب و روز به درگاه خدا دعا میکردن که خدا بچهای به اونها بده. اونها به سراغ همه مؤمنان میرفتن و از اونها میخواستند که براشون دعا کنن که شاید در اثر دعای اونها خدا پسری به اونها ببخشه. آرزوی داشتن بچه خواب رو از چشمای اونها دزدیده بود و زندگیشون رو مختل کرده بود. کت خدا عاشق شکار بود و هر وقت که به شکار میرفت عادت داشت که تنها در ورودی خونه رو از بیرون قفل کنه. روزی از روزها که اون برای شکار رفته بود، یه مرد روحانی از دور دستها به لکاپور اومد و نزدیک در قفل شده یک کت خدا که رسید، قفل در ناگهان باز شد و اون داخل خونه شد و به اتاقها رسید. همسر سر کت خدا هم تعجب کرد و هم وحشت زده شد. آخه درست روبروش یه غریبه وایساده بود. پرسید: "آی مرد غریبه، تو کی هستی و چطوری در غیاب همسرم تونستی وارد خونه بشی؟ میدونی که اون اگه برگرده و تو رو با من ببینه، دوی ما رو میکشه؟" قیافه ی مرد روحانی با شنیدن این حرفها اصلا تغییر نکرد و با آرامش خاصی گفت: نه "نترس خانم محترم." برات خبرهای خوبی آوردم. کد خدا که از شکار برگشت در خونش رو باز کرد و جای پاهایی رو که داخل شده بودن دید. اون مشکوک و خیلی عصبانی شد و با شمشیری توی دستش به طرف اتاق زنش دوید. با عصبانیت پرسید زدی دیوونه بگو ببینم اموز کی اینجا بوده؟ بگو تا حسابش رو برسم و به درک واصلش کنم. زنش به آرومی درباره ملاقات با اون مرد روحانی با اون صحبت کرد و به درخت پیرمرده ای که حالا سر سبز و شاداب شده بود اشاره کرد. یه میوه هم از یکی از شاخه هاش آویزون بود. کت خدا که این موجزه رو دید شمشیر از دستش افتاد و برای دوها به درگاه خدا روی زمین زانو زد. بعد از دو، رو به زنش کرد و زمزمه کنان و با صدایی لرزون گفت تو برای داشتن پسر به اون مرد التماس نکردی زن به آرومی جواب داد اون مرد روحانی خبر داد که ما در عرض مدت کوتاهی صاحبهی پسر میشیم پسری که توی تمام ایالت سند معروف و مشهور میشه و اسم اون گامو میشه بعد از مدتی گامو به دنیا آمد و وقتی که فقط چند سال داشت پدرش از دنیا رفت. اون با حمایت های مادر فداکارش بزرگ شد. گامو از بچگی همیشه راستگو بود. حتی اگه به ضررش هم تموم می شد دروغ نمی گفت. به همین دلیل اون با اسم گامو ساجار یا گاموی راستگو معروف شد. روزها پشت سر هم گذشتن و گامو از یه بچه به یه جوان آراسته، عاقل و خوش قیافه رسید. شهرت گامو خیلی زود به گوش نواب قازی خان که حکمران اون منطقه بود رسید. گامو یا به عبارت دیگه گامان خان از طرف نواب احضار شد و بعد یه مقام مهم توی دربار به اون واگذار شد و به دلیل طبیعت راستگویی وفاداری فهم و درک زیاد و هنر حاضر جوابی اون خیلی زود جای خودش رو توی قلب نواب باز کرد. طوری که بعد از مدتی اون معتمدترین مرد نواب شده بود. نواب خیلی سریح توی دربار اعلام کرد که تنها یه مرد کاملا به اون وفاداره همیشه راستگوه و حاضر فداکاری کنه. این شخص کسی نیست جز گامان خان. وزیر نواب مردی بود به اسم خان جا توی. اون از قدرت و نفوذ گامان خان توی دربار نگران و مضطرب بود و میترسید که نکنه یه روزی برسته که گمانخان جای اون رو بگیره. پس فورا نقشه کشید تا با حقه بازی و کلک وسایل سقوط اون رو فراهم کنه. وزیر به نواب گفت که حاضر دروغگویی گامو رو به شاه ثابت کنه. اول شاه از این حرف وزیر خندید، ولی بعدا با اصرار فراوون از اون خواست که این کار رو بکنه. وزیر به نواب گفت که به گامو دستور بده شطورهای مورد علاقش رو برای چرا به باغ ببره. گامو دستور رو اجرا کرد و شطرها رو داخل باغ قصر مرد تا بچرند و چشم از اونها پر نمی داشت. چون می ترسید بلایی سر اونها بیاد توی همین موقع وزیر با عجله به خونش رفت و به دختن زیباش گفت پیش گام برو و اون رو برای کشتن یکی از دوتا شطر اقبا کن دختن وزیر مطالب زیادی درباره کمون شنیده بود و از قبل هم قلبش برای اون می تبید. و حالا که چنین موقعیت عالی برای ملاقات کامو به دست اومده بود از خوشحالی توی پوستش نمی گنجید. وقتی گامو دید که دختر جوون به طرفش میاد فوری صورتش رو برگردوند. آخرون فکر می کرد که دختر یکی از زنان نوابه. بعد به طرف دیگه ی رفت ولی دختر دست بردار نبود. اون یه باره هم به دختر پشت کرد اما دوباره اون رو پشت سرش دید و بالاخره پرسید خانم محترم شما کی هستین و چه مسئلهی باعث شده تا بدون نگهبان توی این باغه خواهی پرسه بزنید دختر وزیر به گریه افتاد و وقتی گامو دو قطر اشک مروارید مانند اون رو که روی گونه هاش دید یک دل دل آشقش شد گامو دوباره پرسید خانم محترم به من نمیگین که چه ای باعث آزار شما شده؟ من میتونم از یه راهی به شما کمک کنم؟ دخترک با صدایی که برای گامو مثل تنین موسیقی دلنشین بود گفت من دختر وزیر هستم و بیماری لاعلوجی دارم. اگه شما بخواید میتونید کاری بکنید که من دیگه زجر نکشم. من در خدمت شما هستم. امیدوارم که سر حرفتون بمونید و جا نزنید. قسم میخورم که از حرفم بر نکردم. دختر وزیر که این حرف رو شنید گفت دکتر جادوگری به من گفته که اگه دلش و محبوب شاه رو بخورم بیماری مداوا میشه. ناگه گامو دست دختر رو خوند. ولی از اونجایی که قسم خورده بود و توی اولین نگاه عاشق اون شده بود دیگه نمیتونست خواهش دختر رو رد کنه البته گامود در عین حال زرنگ هم بود پس وانمود کرد که داره فکر میکنه بعد گفت خانم محترم اگه من به شما دل شطور مورد علاقه شاه رو بدم در ازاش چه چیزی میگیرم دخترک با ناز و کرشم و عشق به جواب داد اگه تو روی حرفت پا باشی قول میدم که تا ابد مال تو باشم گامو فورا شطور رو کشت و دل اون رو بیرون آورد و به دختر وزیر داد دختر هم از اون خواست تا یه مقداری هیزوم و خشک میاره که قلب شطور رو کباب کنه گامو رفت و بنده چند دقیقه وقتی برگشت دید که دختر وزیر رفته توی همون وقت گامو فهمید که دختر وزیر با زیرکی هرش تمامتر اون رو فریب داده حالا چه جوابی داشت که به نقاب بده اون باید با یکی در این مورد مشورت می کرد به دوروبرش نگاهی انداخت ولی جز درخت و بوته چیزی ندید بعد ستا بوته رو روی هم گذاشت به علاوه دستار و پیراهن و کمربندش بعد در حالی که جلوی هوایی ساده بود از اونها درخواست کمک کرد و گفت دوستان من توی موقعیت دشواری قرار گرفتم نواب از من خواست که شتورهاش رو برای چرا بیرون ببرم حالایی که از اونها موده، فرض کنید که من به نواب بگم یه شیر حمله کرده و اون رو کشته ولی کرد من رو باور میکنه بعد از لحظه مکس به خودش جواب داد گامو نواب مطمئنا ردب شیر رو دنبال می کنه و اون رو شکار میکنه ولی ردب شیر کجاست؟ نه آقا جان این راهی نجات نیست فقط باعث میشه بفهمه تو دروغ میگی یه فکر بهتری بکن راه دیگه ای جز گفتن حقیقت وجود نداشت اون تصمیمش رو گرفته بود. همون شب به قصر برگشت. البته این بار فقط با یک شطور. صبح روز بعد همه فهمیده بودن که گامو یکی از شطورهای مورد علاقه نواب رو از دست داده. همه می دونستن که این کار اون تنبیه بزرگی رو به دنبال داره. همه می خواستن بدونن که چه نوع تنبیهی در انتظار اونه. دادگاه تشکیل شد و نواب که برای از دست دادن یکی از شطرهای مورد علاقهش خیلی ناراحت و عصبانی بود از گامو خواست که همه چیز رو توضیح بده. اون ادامه داد حقیقت رو بگو بهونه و دلیل هم نیارد. گامو جلوی نواب بایستاد و قسم خورد که حقیقت رو بگه و چیزی جز حقیقت به زبانش نیاره. بعد هم قضیه ملاقاتش با دختر جوون رو گفت و اینکه اون دختر دل شطور رو برای بیماری لاعلاجش علاجش درخواست کرده گامو ادامه داد من فقط بنابر تقاضای دختر قلب شطور رو بیرون آوردم تا بیماری مرموز مداوا بشه همه تعجب کردند که چطور گامو جرأت کرده که به کشتن شطور اعتراف کنه آخ اعتراف مرگ رو به دنبال داشت ولی نواب خوشحال به نظر می رسید. اون گفت گامو خان ما به وفاداری و صمیمیت تو اعتقاد کامل داشتیم و می دونستیم که هرگز دروغ سر هم نمی کنیم. از این خوشحالیم که حالا حتی با وجود امکان مردنت سعی نکردی به شخص دیگه تو امت بزنی و تمام تقصیر رو خودت به گردن گرفتی. حالا ما از تو راضی هستیم و به تو پاداشی میدیم. ولی قبل از این کار فقط به ما بگو که اون دختر زیبا قولش چی بود که باعث شد تو اون شطر محبوب من رو بکشی. گامو جواب داد قرمانت بشم. اون دختر زیبا به من قول داد تا ابد مال من باشه. ولی خب تنها قول اون نبود که من رو وادار به این کار کرد. آخه من قسم هم خورده بودم. نواب که حدث میزد دختر چه کسی بوده، گفت حالا به ما میگی که اون دختر کی بود؟ وقتی که گامو به حرف اومد وزیر تکون شدیدی خورد گامو گفت اون دختر وزیر بود و نواب دستور داد وزیر به خان دختر تو به گامو خان قولی داده و ما به شما دستور میدیم که ترتیب ازدواج اون دوتا رو تیسری روز آینده فراهم کنی و به این ترتیب گامو با دختر وزیر ازدواج کرد و اونها سالهای سال با خوشبختی کنار هم زندگی کردند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی